برکویر، قونیه، هفتمه جمادی الوله، 642 مثل حیوان بیرونم انداختند همین که از دستشان خلاص شدم کوچف پس کوچه ها را گرفتم و دویدم از ترس پشت سرم را نگاه نمیکردم. بعد به بازاری شلوق رسیدم خودم را پشت دیواری انداختم و نفس نفس زنان همانجا پنهان شدم. آن موقع بود که جرأت کردم پشت سرم را نگاه کنم. با تعجب دیدم کسی تعقیبم نمی کند و خیالم راحت شد. نگو صدای پایی که پشت سرم می شنیدم، صدای پای حلواخوره بینوا بوده. پیشم که رسید روی زانوهایش افتاد. سینهش مثل دم آهنگری بالا و پایین میرفت. رفت. بحت و حیرت از صورتش میبارید. پیدا بود نفهمیده چه اتفاقی افتاده و برای چه یک دفعه مثل دیوانه ها توی کوچه پس کوچه ها شروع کرده ام به دویدن همه چیز آنقدر سریع اتفاق افتاد که تازه الان می توانم حادثه ها را توی ذهنم پس و پیش کنم. توی مسجد بودم، نشسته بودم و همه حواسم جمع موعظه بود. هر کلام مولانا مثل یاقوت گرانبه بود. آنقدر غرق حرفهای مولانا بودم که متوجه نشده بودم جوانی که کنارم نشسته پایش را روی نوک دستداری گذاشته که با آن صورتم را پوشانده بودم بعد یک دفعه دیدم دستار باز شد و روبندم کنار رفت و سر و صورتم بیرون افتاد زود خودم را جمع و جور کردم با این امید که کسی متوجه وضعیت نشده باشد اما سرم را که بلند کردم دیدم یک نفر که توی صفهای جلو نشسته راست راست به من زده چشمهایی به رنگ آبی یخی حالتی سرد شهری خشن فورا شناختمش مگر می شود نشناختش بیبرس بود بیبرس از آن مشتری های بود که هیچ یک از دخترها نمیخواستند با او درگیر بشوند نمیدانم چرا بعضی مردها هم نمیتوانند بدون روسپی سر کنند هم از روسپی ها متنفرند بیبرس هم این طور بود مدام حرفهای زننده میزد شوخی های ناجور میکرد فوش و بد و بیراه چاشنی حرفهایش میکرد. تحقیرمان میکرد. دست به زن هم داشت. یک بار یکی از دخترها را چنان زد که حتی رئیس خونسا هم که پول را مثل بت میپرستید تا قط نیاورد و فریاد زد. برو گمشو از اینجا. دیگر هم این طرفها پیدایت نشود. اما بیبرس باز هم آمد. دستکم چند ماه. بعد به دلیلی که نمیدانم سر دیگر سراکلهش آن طرف ها پیدا نشد. جای دیگری هم به او بر نخوردم. اما الان دیدم توی مسجد نشسته بود. مثل صوفی ها ریش توپی گذاشته بود. اما نگاهش فرق نکرده بود. آن برق وحشیانه هنوز هم در مردمک چشمهایش بود چشمم را دزدیدم اما دیر شده بود مرا شناخته بود بیبرس در گوش مردی که کنار دستش نشسته بود چیزهایی پشپش کرد بعد هر دو یک دفعه برگشتند و با نگاههایی سرد مثل یخ براندازم کردند بعد به مردی دیگر اشاره کردم، بعد به یکی دیگر اینطوری تمام آدمهای آن ردیف یکی یکی برگشتند و مرا نگاه کردند صورتم گر گرفته بود قلبم داشت از جایش کنده میشد اما نتوانستم حرکتی بکنم با امیدی بچگانه گمان کردم که اگر سر جایم بمانم و چشمهایم را ببندم، همه چیز خود به خود رو براه می شود. اما چشمم را که باز کردم، دیدم بیبرس دارد جمعیت را کنار می زند و به سرعت به طرفم می آید. خواستم به طرف در بروم، اما خلاص شدن از دریای انسانها غیر ممکن بود. بیبرس با یک حمله خودش را به من رساند. چنان نزدیکم آمده بود که بوی نفسهایش را میشنیدم. بازویم را گرفت. گفت آهای زنی که یه بدکاره اینجا چه کار می کنی؟ شرم و حیا سرت نمی شود؟ تت کنان گفتم ولم کن بروم اما حتی صدایم را هم نشنید. همان موقع دوستهایش سر رسیدند. یکی از یکی عصبانی تر و خشنتر بوی خشم می دادند. انگار فراموش کرده بودند توی مسجد هستیم. دورم کردند و بد و بیراه گفتند. همه برگشتند و ما را نگاه کردند. بعضی ها نشنش کردند طوری که انگار بگویند کار خوبی نیست بس کنید. اما کسی دخالتی نکرد تنم از تو لرزید زانوهایم سست شد با هل و کتک بیرونم بردند امیدوار بودم به کوچه که برسیم حلواخوره به کمکم بیاید فکر میکردم راهی پیدا میکنم و فرار میکنم اما آنطور نشد همین که پایمان را توی کوچه گذاشتیم، مردها دل و جرعتشان انگار بیشتر شد و وحشیتر شدند. با ترس و لرز فهمیدم که توی مسجد به احترام پیش نماز و جماعت بوده که صدایشان را زیاد بلند نمیکردند. اما توی کوچه هیچ چیز جلودارشان نبود. توی این زندگی لحظه های خیلی غمبارتری داشتم، اما فکر کنم هیچ چیز اینقدر تکانم نداده بود. پس از سالها سرانجام به این فکر افتاده بودم که از این راه برگردم و توبه کنم و به قدر و اندازه خودم برای نزدیک شدن به خدا قدم برداشته بودم، اما چطور جواب داده بود؟ با راندن من از خانهش. با صدای بلند قرولوند کردم. گفتم کاش اصلا به مسجد نرفته بودم. مردم حق دارند. آدمی مثل من توی این مکان مقدس چه کار دارد؟ نه در مسجد جایی دارم نه در کلیسا. صدایی گفت اینطور حرف نزن برگشتم و نگاه کردم. باورم نشد. او بود. آن درویش بیریش و بیمون. فوری پا شدم و خواستم دستش را ببوسم. نگذاشت. با صدایی قاطع ولی آرام گفت. چه کار میکنی؟ من نمیگذارم کسی دستم را ببوسد. زیر لب گفتم. زندگیم را مدیون شما هستم. شانه تکانداد و گفت دینی به من نداری. تنها قرضی که داریم به خداست. حالان که میدانی در قرآن چه می‌فرماید؟ کیست که به خدا قرض الحسن بدهد؟ اصلا فکر کرده ای پروردگار متعال برای چه از بندههایش قرض می همین طور نگاهش کردم. نمیدانستم چه بگویم. ایمان آوردن یعنی قرض الحسن دادن به او. اگر قرض را از سمیم قلب بدهی، او هم چند برابرش را به تو برمیگرداند. درویش بعد از گفتن این حرفها خودش را معرفی کرد. اسمش شمس تبریزی بود. آن چشم سیاه را به صورتم دوخت و عجیبترین حرفی را که در عمرم شنیده بودم بر زبان آورد بعضی آدمها زندگی را با حالهای با شکوه آغاز می کنند اطرافشان برق میزنند و درخشانند اما با گذشت زمان رنگ کدر می شود و به سیاهی می‌زنند. تو هم از آن آدمها هستی زمانی حالت سفید و سهرامیز و زیبا بوده با تلعلوهای زرد و صورتی اما الان نواری به رنگ قهوهی کدر دور بدنت را گرفته همینو بس حیف نیست؟ دلت برای رنگهای حقیقیت تنگ نشده؟ نمیخواهی با جوهره یکی شوی؟ ماتم برده بود. در حرفهایش غرق شده بودم. الان درخشندگیش را از دست داده چون به خودت قبولانده ای که آدمی بد و کثیف هستی. لبم را گاز گرفتم. آرام گفتم. اما همانطورم، طورم. کسیفم. مگر اند کی هستم؟ مگر نمیدانی چطور خرجم را در آورم؟ شمس به جای جواب دادن به دور دست ها چشم دوخت. گفت با اجازت می خواهم حکایتی برایت تعریف کنم و این حکایت را تعریف کرد. در زمانهای گذشته روسپی از راهی میگذشت. چشمش به سگی افتاد. سگ بیچاره آنقدر زیر آفتاب مانده بود که داشت از تشنگی تلف میشد. روسپی در حال چفشش را درآورد. به سرشالی بست و از نزدیکترین چاه برای سگ آب آورد. بعد هم به راهش ادامه داد. روز بعد به صوفی با علم عمیق برخورد صوفی تا چشمش به زن افتاد دستش را گرفت و با احترام بوسید روسپی حیرت کرد خجالت کشید آخر کسی در زندگی دستش را نبوسیده بود وقتی از صوفی سبب را پرسید صوفی در جواب گفت دیروز به آن سگ تشنه سمیانه شفقت کردی پروردگار هم همانجا همه گناهانت را عفو کرد الان از برف هم پاکتری آهی عمیق کشیدم منظور شمس تبریزی را فهمیده بودم اما هیچ جوری نمی توانستم باور کنم گفتم قصهات قشنگ بود اما مطمئن باش که اگر تمام سکهای ولگرد قونیه را هم سیر بکنم باز هم برای بخشیده شدنم کافی نیست شمس گفت آن را تو نمی‌دانی آن جایش را فقط خدا میداند. تازه از کجا میدانی؟ مردانی که امروز از مسجد بیرونت انداختند از تو به او نزدیکتر باشند. با دلزدگی گفتم حتی اگر اینطور هم باشد بیا این را به آن مردها بگو. اما درویش سرش را تکان داد. گفت نه چرخ دنیا اینطور نمی گردد. اگر قرار باشد کسی این را به آنها بگوید، آن کس تویی. گفتم، یعنی چه؟ انگار به حرف من گوش می دهند. آنها از من نفرت دارند. کم مانده بود، بکشندم، مگر ندیدی؟ شمس با قاطعیت گفت، گوش می کنند، چون موجودی جداگانه به اسم آنها وجود ندارد. همانطور که چیزی به اسم من وجود ندارد، همیشه یادت باشد. همه چیز در کائنات به هم بسته است. انسان، حیوان، نبات، جماد، صدها و هزارها مخلوق جدا نیستیم. همه یکی هستیم. منظورش را نفهمیده بودم، منتظر ماندم توضیح بدهد. اما او با جوش و خروش به حرفهایش ادامه داد این هم یکی از قواعد است قاعده نونزده اگر چشم انتظار احترام و توجه و محبت دیگرانی ابتدا اینها را به خودت بدهکاری. کسی که خودش را دوست نداشته باشد ممکن نیست دیگران دوستش داشته باشند خودت را که دوست داشته باشی اگر دنیا پر از خار هم بشود نومی نشو، چون به زودی خارها گل می شود بیان که بتوانم حرفی بزنم همان جور ایستادم از یک طرف درک این حرفها برایم سخت بود از طرف دیگر با شنیدنشان احساس راحتی می کردم و انگار از این عالم مادی بیرون می رفتم. شمس گفت، اگر خودت را شایسته رفتار خوب ندانی، مگر می توانی از دست دیگران عصبانی بشوی که چرا با تو خوب رفتار نمی کنند؟ به آدمهایی فکر کردم که تا آن روز دیده بودم. بویشان، نفسشان، دستان پین بستهشان، داد و فریادهایشان دیده بودم بچه را که به حیولا تبدیل می و مردانی را که ظاهرشان به حیولا میماند اما باطنشان نرم و مهربان است الان هم درویشی سیاه پوش جلوم ایستاده بود و می گفت مثل چشم سارهای کوهستان پاک و زلالم به شوخی میمانست: اما تا خواستم بخندم بغس گلویم را گرفت خندیدن که هیچ حتی نتوانستم آب دهانم را قورت بدهم شمس انگار فکرم را خوانده بود تبصمی کرد و گفت گذشته گرداب است بی سر و صدا آدم را به درون خود می‌کشد حال آنکه تنها چیزی که تو لازم داری زمان حال است اصل آن است که حقیقت حال را دریابی بعد از گفتن این حرفها، از جیب داخل جبهش دستمالی ابریشمی درآورد و به طرفم گره گفت بگیرش ذاتی مبارک در بغداد داده بود پس قسمت تو بوده این دستمال را تمیز نگهدار هرگاه دوچار شک بشوی پاکی درونت را به یادت می‌آورد شمس پس از گفتن این حرفها، عصایش را برداشت و آماده رفتن شد گفت معطل نکن خیلی زود از آن خانه بیرون بیا هیچ وقت هم به آنجا برنگرد؟ تو ققنوسی در مزبله چه کار داری برو مبادا پشت سرت را نگاه کنی اما کجا می توانم بروم جایی ندارم تازه فوری پیدایم می کنن. آخر عاقبت دخترهایی که از آنجا فرار میکنند خیلی وحشتناک است. شمس گفت: عاقبتمان را ما نمیدانیم اندیشیدن به پایان راه کاری بیهوده است. وظیفه تو فقط اندیشیدن به نخستین گامی است که بر میداری. ادامهش خود به خود میآید. سرم را تکان دادم. احتیاجی نبود بپرسم. معلوم بود این هم یکی دیگر از قاعده های شمس است.